دوستان امروز می خواهم درباره کشف اصل واژه ها و پایگذاری یک انقلاب فرهنگی با شما صحبت بکنم. درک و تجربه اصل واژه و فلسفه استوار بر آزمونه های اصیلی که در این واجه ها هست علت انقلاب پرهنگیس فلسفه, فلسفه که اندیشیدن بنیادی می باشد نه تنها با واجه ها کار دارد نه تنها واجه ها با ها سر کار دارد و واژه ابزار فلسفه ابزار اندیشیدن نیست بلکه در گوهر با فلسفه در گوهر واجه های یک زبان هست که اون رو باید زایانید ببینید فلسفه واجه ها را به عنوان ابزار و آلت به کار نمیبرد بلکه در گوهر واجه های یک زبان فلسفه یا بینش بنیادی هست که باید آن را گسترد آن را زایانید روشن کرد بسیاری از مکاتب فلسفی میکوشند که باجه ها را با تعاریف خود مردبندی کنند و مرزهای آن را ثابت کنند و به دینسان به واژه هویتی ثابت و مشخص و سخت و پایدار بدهند ولی واژه در اصل روییدن روند جنبش از تاریکی به روشنهایی روند از تنگی به سوی گشادی در هر واژهای هم این رویش از و هم رویش به چیزی هست خوب این نکته بایستی ملموس بشود که در هر واژهای یک رویش از چیزی هست که این یک حرکت از تاریکی به روشنویست. هم رویش به چیزی هست که در اون تاریکی هست که باید روشن ساخته شود. واژه در پرهنگ ایران به معنای رویش است واخش، واژه روشنی و بینش در پرهنگ ایران ببینید روشنی و بینش در پرهنگ ایران با هم یکی گرفته می شود روشنی و بینش در پرهنگ ایران همیشه به شکل روند رویشی و زایشی دریافته می شود بینش من یا روشنه من چیزی جز رویش و زایش گوهر خودم نیست واژه که وخش می باشد حتی دارای معانی وحی و الهام و یا زبان کشیدن و افروختن می باشد وخش این محدود تنهای رویدن را ندارد بلکه در این تجربه بیش از این هست مثلا به زردوش وخشور گفته می شود که در اصل وخشور باشد چون وحی و الهام از زهدان وجود او این ور در آخر به کمون بر باشد رویداست وحی و الهام از زهدان وجود او زایده شده است از تخم وجود او رو ایده شده است. فل... وحی و الهام در فرهنگ ایرانج این معنا را داشت. یک چیزی نبود که از آسمان فرو افتاده باشد. فلسفه یا بینش بنیادی در همین در خود همین واژه ها هست. روشنی فلسفه یا بینش بنیادی روشنی به بینشی است که از ما در خود واجه های ما روئیده و زاییده شده است اینکه در گذشته فقط به واجه های ایرانی فرهنگ گفته میشد برای این بود که این واجه ها حامله به فرهنگ ایران هستند امروزه این به هر کتاب لغتی فرهنگ گفته میشد. این به کلی غلط است چنین فرهنگ فقط به واجه های ایرانی گفته می شده است و این محدودیت برای این بوده است که فرهنگ یعنی قنات یعنی آبی که از تاریکی کاریز آهسته بیرون تراویده میشد و به به روشنایی میآید. پس بنابراین این واجه ها در خودشون حامل آب اصل روشنی بوده است با تقل که پیوند پیدا میکرد میروید روشنی میشد پس بنابراین این فرهنگ واجه ها فرهنگ یعنی قنات بود. واجه ها قناتی هستند که بینش ویژه ایران در آن روان است هر زبانی فلسفی زنده و پویای خودش را در همان هایش دارد فلسفه ترجمه شده فلسفه مرده است فلسفهای که زود می میشود زود فرو افکنده میشود می‌بینید این های ترجمه شده یک انگیزش ایجاد میکنند کنند بعدشان همه ساقت می شود در تمام ملت ندارند در این واجه ها بون تاریک و جرف آن ملت پیکر به خود می گیرد. این است که امروزه افکار دینی اسلام که حاکم برمش و افکار وارداتی غربی همه یا در تضاد با این واژه ها هستند یا در تنش فرهنگی با این واژه ها هستند بدون اینکه ما از آن آگاه باشیم ما این افکار مقتدر اسلامی یا افکار وارداتی را هر روز ندانسته ناآگاهانه بر واجه های خود به انف به زور تحمیل میکنیم. کنیم های خود را با قهر و خشونت و طبق آن افکار می یا ساخته ما این واجه های, های ما همه در زیر این انف و قهر هزار و هزارها ها پر از تنش و پر از ستیزش درونی هستند. مثلا یکی دو مثال آورده می شود تا اینی که خوب این تنش و کشیش در باج هر باجهی که ما, امروز ما همطور بی خیال بر سر زبان می آوریم بدانیم که در روان و زمیر ما هر کدوم از اینها را خداگاه در چه های هستم مثلا اصطلاح دین را به مفهوم رایج اسلامی یا زردشتی یا مسیحی یا یهودی به کار میبرید. این یک تجاوز به فرهنگ ایران است این یک مدخ سازی فرهنگ ایران است این یک نابود سازی فرهنگ ایران است ما این کار را با نهایت و شادی میکنیم، و این را البته بدیهی هم می‌شود ولی این یک سادیس یک خودزنی خودخوری خود دین هنوز در کردی معنای اصلی فرهنگ ایران را نگاه داشت و به معنای آبستن و دیدنس دین بینشی است که انسان میزاید بینشیست که انسان خودش میزاید انسان وجودی است که در بینش با حاملگی کار دارد یعنی چی؟ یعنی از تجربیات خودش حامله می شود و از این این تجربیات بعض رو تقمی می در ذهدان وجود وجود و این بینش را که تکامل این تجربه می شود بینشی که میزایه. زاید دین که دعه نا باشد دعه نا. یعنی چی؟ یعنی ناییست که میزایه. دعه میانشه نایس که میانشه دعه ناییست که میافرند. اینا معانی دعه نی هم معنای نیلبک دارد هم معنای زهدان و زن. دین در پرهیره ایران واجعی بوده است که به چشمی گفته میشوده است که در تاریکی و از دور کچیفتر چیز را میبینه این تجربه که هنوز واجهی دین نگاه داشته با آنچه ما به زور به این واجه میچپانیم و چپانده و در حال چپ، چپ، چپ، چپاندگی نگاه داشتیم. فرق داره حالا میاییم اون نعره میکشیم که دین باید از حکومت جدا شود خب اینجا باز دین را به مفهوم اسلامیش به مفهوم مسیحیش به کار میبریم در حالی که همه این ادیان از دید تجربه فرهنگی ایران که در واجه دین نگاه داشته شده زد دین و فاقد دین هستم ما مسئله من جدا کردن حکومت از بیدینیش اسلام زد دین است. اسلام بیدینیش این تجربه فرهنگی ایران است. مسئله ما, جدای، ما جدایی حکومت از دین نیست، مسئله جدایی ما جدایی حکومت از دین و بی, بی نیست. این ادیان کاذب بر ضد ترابش و زایش بینش از خود فرد انسان‌ها هستند. چون بینش در تاریکی که گفتیم ایرانی به این چیز دین میگفت بینش در تاریکی فرد ندارن به وقتی فرد در تاریکی میبیند بینش در تاریکی که دین نامیده میشود یعنی چی؟ یعنی بینش پایه جستجو و آزمایش در تاریکی جستجو آزمایش همیشه تاریک هم. شما نمیدانید که دنبال چی میگردید جستجو و آزمایش همیشه بینش در تاریکی است ما واجه های خود را لگلمال میکنیم به معنای اصلی واجه های خود پشت میکنیم و به آنها معنای قلبی و جعلی و غلط و وارونه به قهر و زور میدهیم و با این واجه های قلبی و جعلی و واجونه است که میخواهیم نو بیاندشیم مگر میشه وا این معانی قل... قلبی و جعلی و بارونه این واژه هاست که روشن فکرهای کذایی ما میخوان افکار ما رو روشن کنیم میگویند دین خویی چیز بده دین خویی یعنی چی؟ یعنی بینش از تاریکی یعنی بینش زایش زایش بینش از خود آیا این بد است آیا این دین خوییک در فرهنگ ایران اوج فرهنگ نیست ما مییاییم این را بر قیام کنیم آخر این چه روشنی است چه روشن فکری است چه روشنگری است مثلا حالا اینقدر معرکه به لیسه کولاریته راه انداختیم و کتاب خارجی رو پشت سر هم ترجمه می و هیچ کدام تجربه اصلی و مغز این جنبش رو در این کتاب نمیفهم. یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم سکولاریته جنگ و دعوا بر سر یک مسئله خیلی پیش افتاده در فرهنگ ایران بوده است مسئله فانی بودن زندگی در زمان یکی میگوید این دین زردشتی و سپس اسلام میگوید دین زمان چون میگذره زندگی در زمان هست پس بیاردش هست. این خیلی مفهوم ساده است. پس چون ارزش نداره باید تمام زندگی و سیاست و حکومت و اینها را به قایت زمان آخرت و اون دنیا کرد مسئله این اینه که ما امروزه میگوییم نه آقا ما این رو نمیخواهیم سکولاریت در اروپا هم همین معنی رو داشته معنی اصلیش زمان گذرا بوده است ولی معنای که معذوم میخواستن میگفتن نه آقا اینی که شما میگید گذر گذر نیست درست این مسئله است که در همون واجه گذر و گشت با این جنگ و دعوا به روشنی باقی مونده در با آجه گذر و گشت اگر یک کمی دقت بکنیم میبینیم که درست میگوید نه گذر و گشت درست اصل ارزش است گذر گشت گشتن که از گشتن میاد معنای فنا نداشته است معنای بی ارزشی نداشته است. تجربه ای تجربیات ایرانی در واژه گشتن و سپنجی و سپنجی درست این ضد این محکومه تنابخانی بودن زمان زندگی چرا؟ همین دواجه را که در اصالتش بفهمیم نیاز به همه این ترجمه های پیچیده که حتی مترجمانش در آخر تجربه اصلی سکولارتره در نمی نداریم آخر کسی در خانهاش پیش پاش افتاده از یک حقیقتی میره و در دنیا بگردد در زبانهای بیگانه که به زور بعد از سی سال هم چیزی از آن نمیفهمد این را بفهمد که این تجربه رو تب وقت بیا ترجمه که نه خودش چیزی از آن بفهمد نه مردم از آن چیزی بکنه گشتن در اصل ورتن گردیدن همین گردیدن وردی ورتن همون گردیدنمون که وردن که شده از این به تبدیل به گه میشوه شود ورتن شده از گشت در اصل در فرهنگ ایران هیچ معنای گذر به معنای فنا نداشته بونه دنیا هر روزی به شکل دیگری مترفوت پیدا می کند دگردیسی دیگرسی میگوید دگردیسی مفهوم ناقصی این را ایرانی همون کلمه فرگرد فرور فروها فرگرد همون معنای متامرفوت داشته یعنی تحوله مثلا کرم ابریشم به پروانه این خدا متا مورفوز به دنیا پیدا میکنه ایرانی نمیگه که خدا دنیا رو خلق میکنه نه خدا متا فرگرد متون پروردین تیمر فرورد یعنی خدا متامرفز پیدا کنند به گیتی به انسان این واژه را موودان زردشتی در راستای تئولوژی خود مسخ ساختند ما فقط ها این رو باید نشان بدهیم این کتابهای علمی همش رونوشت برداشته شده از موبدا و آخندهای زردشتی وقتی هی به رخ ما میکشن که اینها علم است آخر حرف آخون علمی یا به منظور تولوژی هست به منظور دفاع از ساعت مستقیم و راه راست و که است. نه این معناش یعنی متامورفوت به عبارت خیلی ساده یعنی خدا هر روز میگردد خدا هر روز میگردد خدا میگذرد میگشتد اصلا این من خدا هر روز شکل دیگر مییابد در شاهنامه این اندیشه خیلی ساده بیان می میگوید زمان بن درختی است که هر روز شاخ تر و تازه‌ای بر آن میروید و بران آن می افسایند می افسایند ببینید پانی نمیشود خدا هر روز شکل دیگری پیدا میکنه هر لحظه بوت من بوت ایار من به شکل دیگر در میبین هر روز جشن تولد خدا در شکل دیگر آره این کجا با فنا سر کار دارد هر روز با خود آهنگ موسیقی دیگر دارد هر روز گلی دیگر میشود. حالا موبدان زردشتی از این واژه گذر را به مفهوم فانی شدن ساختند ما فقط این را باید دور بریزیم این چیزی را که به عنوان علم امروزه به ما در این متون ایران شناسی حق نمیکنند و تو دانشگاهها به عنوان تحقیقات علمی هر روز به خورد ما میدند این واژه در اصل فرهنگ ما بر ضد اندیشه حاکم اسلامی است و هیچ نیازی به وارد کردن سکولاریت از غرب نیست که کسی از آن چیزی نمی فهمد و, حس و لمس نمی کند. واجد دیگری که برای سنای زمان به کار برده می شود سپنج است. می دنیای سپنجی، سپنجی سرای. یعنی دنیا وقت معنی میکنن یعنی دنیای پانی و آره اصلا چنین معنایی های پنج نداشته سه پنج اصلش ما معنای سه تا تخم و باز هست هنوز در خیلی جاها معنای تخم و رو نگه داشت است. این بونه هستی سه تا تخم بود سپنتا سه پنج خود سیمرغ خود تمام اینها همه به این اصل سه تا یک بون دنیا چه هست از این تخمیش که که میروید و هر روز شاخه دیگر می شود. معنای دقیق آن از سه پنج در شاهنامه باقی مانده است سه پنج دادن هر قریب و بیگانه و آواری که میآید باید برای او جشن برپا و او را نواب و به این سپنج دادن می‌گوند بهرام بهرام در گردشهایش در آوارگیاش وقتی که از لشکر دور میافتد میافتد همیشه به به جایی می‌رسد از جمله به لَمبک لنبک آبکش که همون سیمرغ باشد به او سپنج می‌دهد خدا خدای چه است یعنی چی یعنی قریب هر چیزی بیگانه و قریب و آباره آواره است برای او جشن مهمان م... او را مهمان میکند و از همه چیز خودش میگذارد تا به او جشن برای او جشن دیگه بود خدا هر روز شکلی این خداست که به منزله من میاد خدا هر روز شکلی دیگری میگیرد از این رو هر روز قریب و نو بیگاند. خدا همیشه بیگاند. چون همیشه نو است. به آنچه نو هست. به زمان نو. نباید به کردار دشمن نگریست. بلکه باید با آغوش باز او را پذیروت و برایش از کل هستی خود مایر رفت جشن ساخت. همین کار را لمبک میکند. پس دنیای سپنجی دنیای رفتن به استقبال نوها و جهت گرفتن برای آنها بوده است و هیچ, م... هیچ وقت معنای دنیای فانی نداشت است خوب ما وقتی این واجه سپنجو این واژه گشت را در فرهنگ خود در یافتیم اینکه کاری ندارم این فقط یک خورد جستجو کاوش میخواد نه کابش و جستجوی دانشگاهی که فقط به درد چاردیواره همون محیط سمینارهای خودشان میخورد و همیشه عقاید حاکمین دینی و حاکمین سیاسی را بیان میکنه که به خودشون خودشان را بگیرم این واجهیست معنای دقیق سپنجوگش وقتی در فرهنگ خودمان یافتیم نیاز به زور زدن و ترجمه کردن کتابهایی نداریم که در ترجمه آنها نه خودمان چیزی از آنها فهمیدیم و نه ملت میتواند و نه میتواند ملت ایران را بسیج سازد ولی ملت ما هنوز این واجه ها را میشناسد فقط نیاز به آن که ما این ویاجه ها را به ادبیات خود به گویش ها در چیزهایی که گویش ها می به زبان به زبانهای کردی و پشتو و بلوچی که معانی اصلی را، که بسیاری از معانی اصلی را نگاه تشتن پیوند بزنیم ما فقط این باجه ها را باید به اینها پیوند بزنیم تا از سر معنای اصلی را پیدا کنم این اینها را گویش ها و اینها رو را بی ارزش نشماریم در نفوذ موبت های زردوشتی همه جا به اندازه شهرها و نقاطی که حکومت بوده است نمیرفته است این است که در گوش و کنارها بسیاری از واجه ها معانی اصلی خود را که تفاوت با آنچه در واجه های ابستا ترجمه میکنند دارند عنوان معانی علمی اینها معانی اصلی را نگه داشتند همین عوام همین عامه اینها را اینها را که امروز ما به عنوان گویش ها بی کردیم در اینها گنج های ناگفته که در زبانهایی که ما در این کتاب های علمی اروپایی ورق میزنیم نیست و در همینها درست معنای اصلی واژه ها هست ما باید این تحریفات را که مانند خاکروبه بر روی هر واژه ای شده و واژه را خفه کرد، به کنار بریزیم اونگاه انقلاب و فرهنگی انقلاب و اندیشه و فلسفه داریم واجه های ایران بر ضد های حاکم اسلامی و زردشتی هستند و با دریافت آنها در اصالتشون به خودی خود همین واژه ها در زبان مردم از احدی بسیاری از تحولات بنیادی برمی که ما با ترجمه هزاران کتاب از فلاسفه خرب نمی توانیم انجام بدهیم خوش و خورم باشیم